خیام اگرچه چه کرخه کبود زد خیمه و دربست در بس گفت و شنود، چون شکل حباب باده در جام وجود، ساغی ازل هزار خیام نمود. خوش باش که قصه بیکران خواهد بود، بر چرخ قران اختران خواهد بود، خشتی که زغال به تو خواهند، زدن ایبان سرای دیگران خواهد بود. مرم دلان کسی که معروف نشد، در جبه و در رائب و در صوف نشد، سیمور سفت به عرش پربازی کرد، در کنج خرابه جهان بوف نشد. حال گل و مل باد پرستان دانند، نه تنگ دلان و تنگ دستان دانند، از بیخبری بیخبران زوقی است در این شیبه که مستان دانند.